খ মন আম اما ز آتش راهت ز آتش راهت دلام زنجیر و قفص ریختند در پای دلام اشرا گلبرار یوز تنم ای وای تنم وای من اومادران থাম <med> মন <med> <med> منو بگيرم من, من تو من تو چوي تو از قله دي كسي يولا از قامت تو من عمرم ضم پوي پوي من ماموم خیلی معمول خیلی چی شما اینکه نمیدین من حرف بزنم ماشاءالله زار ماشاءالله مرسی گوشم اولا من یکی رو سفید کردی جلو آقا مهندس بیلی به خدا خیلی رابطه دوستی رفاقت اینجاها معلومه به هر حال بنده از اول باور نمی‌کردم چی سرکار باشن فکر می‌کردم که یکی دیگه چون یه جورایی بود مدل مومن نمیتونستم رو ببینم اینی که این که اینم خودمون تقلبی فکر کردم تقلب کردم نه دو دقیقه باور نمیکرد نه من یه خودی که دقیق شدم فهمیدم منتها خیلی ممنون خیلی متشکر این سورپرایز بود دیگه ها شما که راضی از این بله, بله بله راضی هاشم همیشه از این کارا بکن باری کلا یادت باشه شش. یه پاداش بگم برات بنویسم حسابداری برو بیگی میدم هرچی من من بدون اینکه به شما بگم اضافه کردم به این سرپریزی که برای شما کردم که یه قرار مصاحبه کوچیکم با, با گوش گذاشتم که اگر موفقات بفرمایید تو دفترتون بریم و این مصاحبه انجام خواهش میکنم من حرفی ندارم اما در مورد این مودیل مو گوش جان من که سؤال دارم این تو زیر آلاچیک ماست ایمان چرا ها ها ها ها میکنی احمد نید که زیر چشم درسته بعضی از خانوم ها برای اینکه خط نیفته زیر چشمیشون آهاهاها میخندن خب دیگه اینم یه جورشه ولی حالاها در مورد اون آلاچیقت صحبت کن ولی راستش شما بذارین به پای یعنی به حساب اینکه مدل جدیدمه ولی چون دلاران به من تلفن کرد من تمام فوری پاشادم اومدم اینجا که شما منو کی دید اجراب کنم برای به سلمونی نرسیدم خیلی اتفاقا یه مست دیگه هم داره بارون بیاد این چت خیس نمی‌شه بارون می‌زنه <تصفح> <تصفح> خط میفته برید تو, <تصفح> تو دفتر من برید دفتر من جانم فعلا تا اینجاش کافی <تصفح>